که میشد به خودش پیله میکرد یه تا دیگه میرفت والا اون تو همون تا انگاری که غرق میشد بعضی چیزا فقط توی شب دیده میشن ته اون دل کوفتی انقدر راست داشت که اگه مغز پلیس بود می چردل و باز داشت مغز. دل جنگ این دوتا چقدر آشناست شبای که روز میشد روزایی که شب خیلی حرفایی که دود میشد دودایی که هفت هم خوابگی بابی خوابی میشد دراز رو تخت گل خیره میموند ظاهر میشد چشاش رو سخف آره چشاش رو سخف چیزی زیباتر از اون تا حالا ندیده بود دوتا علماسیر دو عبروی خمیده بود انقب برندگی داشت میتونست بوره و بسازه یه دل همیشه خون ظاهر میشد یه لبخند مرمز با یه شیطنت خاصی انگار میخواست بگه که تو دل تو میبازی به مردف هر روز لبخند مرموز وای از این لبخند مرموز که گور میداد به تموم تنش یه قمار لنتی و وقتش که سیاه بود اون فقط میخواست تصویر باشه مال خودش ولی اون چشا و لبخند واسه خیلی ها بود بهش غصه بعدی تصویرش می شد با رخصه لخت بعدی شعینه سه گوه شدید اون برا شده مریض ولی توی صورت تصویری چی غصه ندید اون نبود جک جدید از هر اون زاده های دورش به چی میخندیدن شاید بینش این عشق عجیب غریب سا باید کنی اشتنا ولی نمی کنی وقتی باشیاشق اون اشتبا اون نمیکرد ساس شواستک ولی تفرونونادید میگر تا که بده بش ازذا تصی نمی خوست که مال یکی بشه نمی خوست که کسی در گوش شاشقانه بگن پیاده روی پییا روی سر دردش بد زیاده روی گلی می بافدش بیرفه یه خیال بدی به خودش همش میگ و سکن دیوانه نشیوان ندیگاره بدی دی جو بیاال متطلا چین هی ساختن یه و نویر و نیاش بیفایی دست هر چی میخواد بهش نزدیک بشه تصویرم دن ازش بیشه دور مثل شکارچی با دیده کور همه کار دی بود دورش پر از احلی ولی تصویر لندی وحشی ترین وحشی بود و اون قرق توی رنج حاصله یه فاصله اون چیزی نبود به جز آشقه یه